از صبح تا ظهر و بیشتر بعد از ظهر روز جمعه به کمک کاغذ شفاف گردهبرداری و با زحمت زیاد سعی کردم در میان جنگلی از نمادهای تناسلی درختهایی را شناسایی کنم که دانشجوی اهل بانگور مین آگاهانه روی کاغذ کتانی گران قیمت کشیده بود ساعت که به چهار و نیم نزدیک می شد احساس میکردم که از نظر ذهنی، روحی و جسمی از پا میفتم و هنگامی که آقای یشاتا برای لحظه‌ای بالای سرم آمد تنها توانستم خودم را اندکی از روی صندلی بالا بکشم چیزی به دستم داد آنقدر با بی‌اعتنایی که گویی پیشخدمتی معمولی بخواهد صورت غذا را به دست کسی بدهد نامه‌ای بود از طرف مادر ارشد دیرهوهر ایرما که به اطلاع آقای یشاتا رسانده بود که پدر زیمرمان به سبب شرایطی که بیرون از اختیار اوست ناگذیر شده از تصمیم خود را در مورد اجازه تحصیل به ایرما، در مدرسه دوستداران استادان دیرین تغییر دهد. نویسنده نوشته بود، از اینکه این تغییر برنامه ممکن است، ناراحتیها و گرفتاری برای مدرسه به وجود آورد، عمیقا متاسف است. او در پایان صمیمانه اظهار امیدواری کرده بود، که مبلغ چهارده دلار اولین شهریه مدرسه به اسقفی برگشت داده شود کارتونی را به یاد آوردم که در آن موش با نقشه ناب و حساب شده ای که برای کشتن گربه کشیده است لنگان لنگان از محبته چرخ فلک شعله بر و سرانجام به خانهش می رسد نامی مادر ارشد را خواندم و باز خواندم برای دقیقه های طولانی به آن خیره شدم ناگه به کنارش انداختم و برای چهار دانشجوی باقی ماندم نامه نوشتم و به اطلاع آنها رساندم که فکر هنرمند شدن را از سر بیرون کنند برای تک تک آنها نوشتم که هیچ استعدادی که در خور پرورش باشد ندارند و صرفا وقت با ارزش خود و نیز مدرسه را به هدر می دهند. هر چهار نامه را به فرانسه نوشتم کارم که تمام شد بیدرنگ بیرون رفتم و آنها را پست کردم رضایت خاطری که پیدا کردم دیری نپایید اما همان مدت بسیار اندک هم. برایم خوشایند بود. هنگامی که وقت مراسم رجب سوی آشپزخانه برای صرف شام رسید، باز خواستم. گفتم که حالم خوب نیست. در 1939 دروغ گفتن خیلی راحتتر از راست گفتن بود. بنابراین وقتی گفتم که حالم خوب نیست، مطمئن بودم که آقای یوشتو با بدگمانی نگاهم می کند. سپس از پلکان بالا رفتم و پا به اتاقم گذاشتم و روی یک مخده نشستم. به یقین یک ساعتی آنجا نشستم و بیان که سیگار بکشم یا کتم را در بیاورم یا گره کراواتم را شل کنم، به نوری که از یک سوراخ پرده ی کرکر میتابید، چشم دوختم. سپس ناگهان از جا برخاستم. تعدادی از کاغذهای یادداشت شخصی خود را آوردم. از کف اتاق به جای میز تحریر استفاده کردم و نامه دیگری به خواهر ایرمان نوشتم. هیچگاه نامه را به صندوق پست نه آنچه آن در زیر می آید دقیقا رو نوشتی از نامی اصلی است. کانادا، مونترال 28 جوانه 1939 ایرمای عزیز، آیا من در نامه گذشته خود بر برحسب اتفاق چیزی ناراحت کننده یا توهین آمیز نوشتم که به اطلاع پدر زیمرمان رسیده، و اسباب ناراحتی شما را فراهم کرده است اگر چنین است از شما تمنا میکنم دستکم فرصتی معقول به من بدهید تا چنانچه در نشان دادن اشتیاق خود برای دوست شدن با شما در عین استاد و دانشجو بودن ناسنجیده سخنی گفتم توبه کنم آیا با این درخواست چیز زیادی میخواهم من که این چنین تصور نمی کنم حقیقت ماجرا این است که در زیر میآورم اگر شما چند اصل دیگر از اصول حرفه را نیاموزید، بقیه عمر را بجای اینکه هنرمندی برجسته باشید، تنها یک هنرمند بسیار بسیار جالب خواهید بود که به نظر من وحشتناک است. متوجه هستید که موقعیت چقدر خطیر است؟ امکان دارد که پدر زیمرمان ناگزیرتان کرده است کار مدرسه استعفا دهید. چون فکر کرده است که این کار شما را از راهبهای شایسته شدن باز می‌دارد اگر چنین است ناگزیر باید بگویم که کارش در بسیاری موارد عجولان است این کار با راهبگی شما مقایرتی ندارد من خودم مثل یک راهب شریر زندگی می‌کنم تنها زیانی که هنرمند بودن می‌تواند برای شما داشته باشد این است که سبب می‌شود پیوسته اندکی غمگین باشید اما موقعیت شما به گمان من قمنگیز نخواهد بود شادترین روز زندگی من یکی از روزهای سالها پیش بود که هفده ساله بودم میرفتم نهار بخورم و مادرم را ببینم که برای اولین بار پس از یک بیماری طولانی از خانه بیرون میرفت از شادی سر از پانه میشناختم که ناگهان همین که به خیابان ویکتور هوگو که خیابانی در پاریس است پیچیدم با آدمی سینه به سینه شدم که بینی نداشت. از شما سمیمانه درخواست می کنم. تمنا می کنم که این عامل را در نظر بگیرید. یک دنیا معنی در این جانه است. نیز امکان دارد که پدر زیمرمان به این دلیل نگذاشته دنباله تحصیلات عالی خود را بگیرید که احتمالا دیر شما بوجهی برای پرداخت شهریه ندارد. من به راستی امیدوارم که موضوع همین باشد چون در این صورت؟ نه تنها تسکین پیدا می کنم بلکه راهی عملی پیش پای من میگذارد اگر به راستی چنین باشد تنها لب لبتر کنید. آن وقت من برای مدتی نامحدود کار تدریس شما را به طور مجانی بر می گیرم. آیا اجازه می دهید دوباره بپرسم که ساعت ملاقات شما در دیر چه وقتهایی است؟ آیا من این اختیار را دارم که از جانب خود قرار ملاقات با شما را در دیر با توجه به ساعت های حرکت قطار میان مونترال و تورانتو بعد از ظهر شنبه آینده ششم ژانویه میان ساعت سه تا پنج تعیین کنم؟ با استراب بسیار چشم راه پاسخ شما هستم. با احترام و تحسین ارادتمند شما ژان دو دومیه اسمیت. از به حیعت مدرسه دوستداران استادان دیرین بعد و تحریر در نامه گذشته خود سرسری پرسیده بودم که زن جوان آبی پوش در جلوی نقاشی مذهبی شما مریم مجدلیه گناهکار است یا نه اگر هنوز به نامه من پاسخ نداده اید خواهش میکنم همچنان از دادن پاسخ خود داری کنید. احتمال دارد که من در اشتباه باشم و در این لحظه از زندگیم علاقه ای ندارم که از خواب و خیال بیرون بیایم. می دارم موضوع برایم مبهم بماند. حتی حالا که مدتها سپری شده است وقتی به یاد می آورم که با خود لباس شام به مدرسه دوستداران استادان دیرین بردم دلم می خواهد سر به دیوار بکوبم. اما چون لباس را برده بودم پس از تمام کردن نامه آن را پوشیدم. همه چیز دست به دست هم داد تا من مست کنم و چون هیچگاه در عمرم به این کار دست نزده بودم از ترس اینکه نوشیدنی زیاد دستی را دچار رعشه کند که مدال اول را رو بوده و چون اینها احساس کردم ناگزیرم برای چنان موقعیت قمنگیزی لباس بپوشم خانم و آقای یشتا هنوز توی آشپزخانه بودند که آهسته به طبقه پایین رفتم و به هتل وینسر که خانم ناشناس یعنی دوست بابی پیش از آنکه از نیویورک بروم به من معرفی کرده بود تلفن کردم یک میز تک نفری برای ساعت هشت ذخیره کردم حدود ساعت هفت و نیم لباس پوشیده و مرتب سرم را از لای در بیرون کردم که ببینم از خانم و آقای یشوتو خبری هست یا نه به دلیلی نمی‌خواستم که مرا با نیم شام ببینند اثری از آنها نبود و من با عجله به سوی خیابان از پلکان پایین رفتم و دنبال تاکسی گشتم. نامه خواهر ایرما توی جیب بغل نیم بود خیال داشتم موقع شام به خصوص در پرتاب شم دوباره آن را بخوانم. ردیف خانه ها را یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشتم بیاکه حتی یک تاکسی بگذرد چهرست به اینکه تاکسی خالی پیدا شود پرنده پر نمی زد. بخش وردون منترال به هیچ وجه محلهی نبود که کسی لباس باب روز تن کند و من متوجه شدم هر آبری که از کنارم می برمیگردد و عیب سر و پایم را برانداز می کند. سرانجام هنگامی که به آن نوشگاه غذاخوری رسیدم که روز دوشنبه سسیس های کانی آیلند را برعیده بودم، تصمیم گرفتم که از جای زخیره هتل وینسور نظر کنم. وارد نوشگاه غذاخوری شدم. در یک قرفه پرد نشستم و در حالی که دستم را جلوی کربات مشکی خود گرفته بودم، سوپ، ساندویچ و قهوه بدون شکر سفارش دادم. امیدوار بودم که مشتریان دیگر خیال کنند که من پیش خدمتی هستم که در سر راه هم به محل کار سر از اینجا درآورده‌ام. فنجان دوم را که میخوردم، نامه پست نشده خواهر ایرما را درآوردم و دوباره خواندم. به نظرم تا حدودی آبکی آمد. تصمیم گرفتم با عجله به مدرسه دوستداران و استادان دیرین برگردم و آن را اندکی دستگاری کنم. همچنین به نقشه هایم درباره دیدار با خواهر ایرما فکر کردم و با خود گفتم که خوب است جایی را که در قطار ذخیره کرده بودم آخرای همان شب استفاده کنم. با این دو فکر که هیچیک از آنها تغییری در حالم نداد نوشگاه غذاخوری را ترک گفتم و قدم زنان به سرعت به مدرسه برگشتم. پانزده دقیقه بعد اتفاقی بی اندازه قریب برایم رخ داد. اتفاقی که ظاهرا سراسر ساختگی به نظر می رسد اما به عکس باید گفت واقعی است. در اینجا می خواهم به تجربه خارقلاده اشاره کنم. ای که هنوز برای من کاملا متعالی است و سعی می کنم در صورت امکان آن را به صورتی ارائه ندهم که عرفان محض یا چیزی از این دست به نظر برسد. به عبارت دیگر باید بگویم که تجربه من روحی بود، نه مذهبی. در تاریک و روشن ساعت نه، همونطور که از خیابان می و به ساختمان مدرسه نزدیک می شدم، متوجه شدم که در مغازه لوازم ارتوپدی چراغی روشن است. از دیدن آدمی زنده توی ویترین تکان خوردم. دختری درشت اندام با پیراهن تور نازک سبز، زرد و بنفش کمرنگ مشغول عوض کردن فتقبند آدمک چوبی بود. به ویترین که نزدیک شدم ظاهراً فتقبند کهنه را تازه باز کرده بود. چون زیر بغل چپ خود گذاشته بود. نیمروخ راستش به سوی من بود. و بندهای فتقبند را میبست. من که مجسوب شده بودم ایستادم و او را تماشا کردم. تا اینکه ناگهان ابتدا حس کرد و سپس دید که او را زیر نظر دارم بیدرنگ لبخند زدم تا به او نشان بدهم که آدمی که با لباس رسمی در تاریک و روشن آن سوی شیشه ایستاده دشمن نیست اما بی نتیجه بود دستپاچگی دختر اندازه نداشت سرخ شد فترق بندی که باز کرده بود از دستش افتاد عقب رفت و پایش را روی انبوهی لگن دستشویی گذاشت و لغزید من بیدرنگ دستم را درست کردم اما ناکه انگشتایم به شیشه خورد. او مثل بازیکنان اسکی روی یخ از پشت به شدت زمین خورد. بیان که مرا نگاه کند بیدرنگ از جا بلند شد. او که چهرهش هنوز برف روخته بود موهایش را با یک دست عقب زد و بستن فتخ بند آدمک را از سر گرفت. در همین هنگام بود که تجربه ای را که گفتم از سر گذراندم ناگهان؟ و اعتقاد دارم که این را با هوشیاری کامل تعریف می کنم. خورشید بالا آمد و با سرعت ثانیهای حدود 150 میلیارد کیلومتر به چشمهای من تابید. من که نابینا شده بودم و بسیار ترسیده بودم، ناگزیر شدم دستم را به شیشه بگیرم تا تعادلم را حفظ کنم. این وزن بیش از چند ثانیه ای طول نکشید. وقتی که بینایی خود را دوباره به دست آوردم، دختر از توی ویترین رفته بود. و پشت سر خود باخچه ای درخشان از گلهای لعابی و تقدیس شده به گذاشته بود. من پشت به ویترین کردم و قدم زنان محله را دوبار دور زدم تا سانوهایم توانایی خود را پیدا کردند. سپس بی آنکه جرأت کنم نگاهی دوباره به ویترین بیاندازم، از پلکان بالا رفتم، وارد دو اتاقم شدم و روی رخت خواب دراز کشیدم. چند دقیقه یا بهتر گفته شود؟ ساعت‌ها بعد مطلب کوتاه زیر را به زبان فرانسه در دفتر یادداشتم نوشتم از این پس خواهر ایرما را آزاد می‌گسارم تا دنبال سرنوشت خود برود همه راه بند همه مردم دنیا راه بند شب پیش از خوابیدن نامه‌های به چهار دانشوی تازه اخراج شده نوشتم و آنها را بازگرداندم نوشتم که در بخش اداری اشتباهی پیش آمده است نامه ها در عمل به نظر می رسد که خودشان نوشته می شوند این موضوع شاید از آنجا نشعد می گرفت که پیش از نوشتن یک صندلی از طبقه پایین آورده بودم